بسم الله الرحمن الرحيم كناياته يعني كنايات عدد كام وكأيين وكذا امروز نخاط كام كأيين وكذا رو توزيله فلن انا بجاية عدد بكابيران كنايات عدد هسان خب بياي سمع جروه هم سلو رو آورده دي قدي داشته باشي كم مدينة, مدينة, مدينة شاهدتا كم مصنعا بمصر كم كرميدا اجتهده كم دقيقة انتظرتني، كم جولة جولت للحق، بكم جنيه اشتريت هذا الثوبة اينا شش مثال بودن اينا كم، چون با دنوه كم دارين گروه دي ازمان سلره اوارده با كم كم من درست. كم كتاب اندك. كم باعث ما تجوهن، كم ساعات قلبه اللهيا. كم اعانت اعانتا خب کم اولیه کم استفامیه بود موقعی که گفته بود کم مدینه دن شاهده از تو که چند تا شهر رو بشاهده کرده ای آه؟ کم دقیقتن انتظارتنی چند دقیقه منتظر من مونده ای این رو کم استفامیه این کم استفامیه همیشه تمیزش مفرد و منصوب هست مگر زمانی که روی خود کم حرف جر بیاد و اون دیگه اون موقع مجروم بشه مثلا مثال ششمی به کم روی کم حرف جم اومده جلی هم مجروع شد خب دیگه وگر نه تعمیزش خودش نه خودش میتونه مرفو باشه مبتدا باشه میتونه منصوب باشه اما کم خبریه کم علوم درسته موقعی که کم علوم درسته اینجا در واقع از تو سؤال نیکنه که چند علوم رو در میخواد خبری بده که چقدر علوم رو که تو نخوندی کم کتاب لنده چقدر کتاب که نزد تو هست موقع میگه کم باعث ماتجوان میخواد به تو خبر بده که باعث زیادی از گشنگی مرده کم من ملکن که سماوات و چقدر فرشته که در آسمان ها و زمین وجود داره از تو نه این بپرسه میخواد به تو بگه که های زیادی در آسمان ها و زمین او این کم, اصف... کم خبریه هست این کم کم چه هست؟ خبریه هست اون کم افتفانی هست اون از تو میپرسه ولی این داره به تو خبر میده بله و کم اهلکنا قبله و این هم خبریه هست پس بیایید یک لحظه ای راب شو بعدن توزی اصلا برای این که تکرار نشه ده خود قواعد اینقدر ساده توضیح داده که نه بوی من غلین لا یقنا بعدش کاین میاد کاین من کتاب لا یصاب المداد الذي کتبه على تمیز کاین همیشه با مل همرا هست غالبا کاین من غلین لا یقنا کاین من کتاب غرستو کذا شجره تمیز کذا یا مفعول از یا جنب مولی هست تمیز استفامی همیشه مفرد هست تمیز کم استفامی همیشه مفرد است. تمیز کم خبریه میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه اما مجرور هست مال استفامی منصوب بود مال کم خبریه مجرور هست میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه مان 모습 کم علوم نینده جمع کم کتابه نینده مفرده تمیزه کذا یا میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه ولی منصور هست و تمیزه کلین با من همراه هست و مجروب هست حالا قوائد رو بیایی یک نا عنالعددی به الفاظه میگه کنایتا جای عدد با الفاظی عدد با الفاظی کنایتا اعلام میشه که اون الفاظ چه هستن کم استفامیه هست عرف و تمیزا مفرد و این کم استفامیه تمیزش مفرد و منصوب هست مانند امسل گروه اول کم مدینتن کم مصنعن کم فلمیرن کم دقیقتن کم جالتن الا اذا دخل علیه حرف و جرن فه یکونو مجرورن. مگر زمانی که برخود کم حرف جر داخل بشه که در این حالت تمیزش مجرور میشه مانند مثال شماره شیش به کم جنه هین اشترای تا حاضر ثوبه کم الخبریتو کم خبریه و تمیزها مجرورا تمیز کم خبریه مجرور هست مانند دید امثلا بعدی کم علوم درستا کم کتاب اندک کم باعث ماتجوان کم ساعت قضیتها، کم اعانت اعانتا اینا می که تمیز شهست مجرور هست و یکونو مفردا و جمعا میتونه مفرد باشه و چی باشه؟ جمع باشه و توفید و تکتیر و معنی تکثیر رو میرسوند موقع میگه کم باعث ما تجواند یعنی با ها زیادی انسان های باعث و فقیر و درمند زیادی از گشنگی مرده جیم جین بیایید شماره آخری توضیحی می‌ده. قاعده دویست کعین و تمیزها مفرد و مدرور تمیز کعین مفرد و مدرور هست به حسله منه معنید که من غنی لایق نه که من کتاب نه و پس میگه و تمیزها مفرد و مجرور بمن و تمیز که این مفرد و مجرور از به من و تدلو على تکتیر و این هم تکثیر رو می رسولند معنید کمه خبریه موقعیت میگه که من غنی لایق نه منظورش این هست که غنی زیادی هستند که قانع نیستند غلیه زیادی هستن که قانه نیستن و کذا دار و تمییزوها مفردون او جمع منصوب تمییز کذا مفرد هست یا جمع هست میتونه مفرد باشه و میتونه چی و هست مانند غرستو کذا شجر هستند. خب این ترکیب میکنن غرستو خیل با کذا مسئول به هیش از تمیز کذا منصوب فهمیدید بزرگان کی؟ کاشتم این قدره به جای اینکه عدد رو نام ببره کنایه بگه کنایه تن میگه کذا کنایه از عدده کذا کنایه سیست یعنی عدد خاصی که كنا... نمیگه و کنایه میگه پس موقع خودمون میگیم دوید خوردی این خوردی هم چه؟ کنایی هست دیگه از عدد پس بیایید ادامه بحث کلا تمیزش مفرد و جمع مفرد یا جمع هست منصوب هست اعرارش و به تکثیر او برای تکثیر یا تقلیل بکار میره همیشه برای تکثیر نیست، بر حسب قصد گوینده است. ببینید کن خبریه تکثیر رو میرسونه، رسونه که تکثیر رو می, رو می اما کذا نه کذا دیگه نیت گوینده چه باشه اون رو می رسونه. اگر زیاد باشه زیاد اگر کم باشه کم اما در مورد اعراب دویست قاعده دویستوم کتاب اذا کانت کم كم... الاستثامیه او الخبریه تو کنایت انذات زمانی که کم استثامیه یا کم خبریه اعراب کم استفامیه و کم خبریه رو داره توضیح می دید کنایه ازدادی باشه منان کم مدینه کم مصنعه کم تلمیده بله و جاء بعدها فعل و بعد از اون فعل بیاد فعل متعدن البته فعل چی؟ متعدی زمانی که بعد از این <تصفيق> بله بعد از کم انصفامیه یا کم خبریه کنایه از ذاتی باشه که بعد از اون فعل متعدی آمده باشه که لم یعخوذ مفعوله که مفعولی نداشته باشه مفعولش ذکر نشده باشه کانت مفعولا به این کم اون موقع مفعول بهیه بیایید روی امثله براتون مثالشو پیدا پرن. مانند کم مدینتا شاحتت اینجا کم مفعول بهی شاحتته است چرا چون بعد از کم مدینتا که ذات اومده کنایه از ذات است و بعدش فعل متعدی شاحتته اومده مشاهده کردی که این شاهته مفعول بهی نداره اگر اینجا اینجوری بود کم مدینتا شاحتتهو یعنی مفعول بهش ذکر می اون موقع کاملا داستان متفاوت میدید میگه زمانی که فعل متعدی آمده بود که ولی مفعول بهی ای آیا اینجا شاهدت مفعول داره یا نداره سروران داره یا نداره احسن چون نداره پس کم اینجا چیه مفعول بهی ترکیب چونین میشه کم میشه مفعول بهی محلن منصوب مدینه تن تمیزش هست منصوب شاهدت فعل با فاعلش هست باید فهمیدید شد. داره توزین میده میگه و آمده بود بعد از آن فعل متعدی که مفعول بهی نداشت کانت پس میشود کم هیه به کم درمیگرده در کانت مستقره کانت یعنی میشود کم مفعول بهی مفعول بهی واقعیش فهمیدید و انتلاها لازمون اما اگر بعد از اون فعل لازمی اومده بود او متعدن اخلا مفعوله او یا فعل متعدی اومده بود که اما مفعول بهی داشت خودش جلوتر از خودش خودش مفعول داشت اولم یلی ها یا اخلا فعلی در اون جمله اومده بود بعدش او قریبت مبتده در هر این چند حالت مبتدا میشه حالا بیاید رو خیلی صبراتون توضیح میدم مثلا کم مصنعا به مصره اینجا کم مبتدا هست چرا؟ چون ما در جمله مون فعل متعدی نداریم که این کم بیاید شود؟ شوید من نوزیه اگر لازم هم میبود اون موقع با هم مبتدا بود چون لازم که مفهول بیهی نداریم که اون موقع کم مفهولش حساب کنیم اگر لازم هم میبود مثلا مثلا اگر اینجوری بگیم اینجو اینجو کم رجولن اینجا دقت کنید کم رجولن جلسه اینجا کم مبتداه درست بعد از رجولن جلسه اومده است. ولی جلسه یک فعل چه است؟ لازم لازم. لازم است. یا در این مثال کم رجولن اکرمتهو اینجا درست فعل متعدی داری که محبول بهش ذکر شدید اینجا هم مبتدا هست کم ببینید در چند حالت کم مبتدا میشه اینجا در قاعده بیاید میگه و انصلاها و اگر بعد اون اسم اومده بود لازمون فعل لازمی که مثال شده مانند کم رجول جلسه او متعدد اخذ مفعوله او یا فعل متعدی اومده بود که مفعول داشت مانند کم رجلا رأیته او، کم ردولن رعیته هو اولن یا ایها فعل یا اصلا فعلی نیومده بود مانند کم مصنعا به بمسرح. در این چند حالت او اریبات مبتدا ان اعراب کم که هست درباران من مبتدا است و امکانت کنایت ان عن اما اگر این کم کنایه از زمان بود از کجا می‌دونیم اینجا کنایه از زمانه خب بعدش زم کلمه‌ای اومده که دلالت بر زمان می‌کنه اگر بعد از کم ما کم با توجه به تمیزش تشخیصی با توجه به چیش تمیزش و امکانت ان انزمنین اگر کنایه از زمان بود اقربت زرفاً ذرن، اعرابش زرف میشه ماننده مثال چارم کم دقیقتاً انتظر اینجا کم نقشش اعرابش هست میگین زرف هست محلن منصوب با توجه به دقیقتاً تشکیشید خب، بیایید و این کنیبی ها انحدتین اگر کم کنایه از حدتی بود اعربت و اریبات اونجا اعراب کم مفعول مطلق است مانند مثال پنجم کم دولتاً جلت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کنایه از حدتی از کاری باشه مدینتن، مطمعن، تلویزن، بسیفتن کاملا قابل تشخیصه جولتان جلف کم زربتن تا کم زربتن زربتن اینجا کم چی میشه؟ مخبول مصطقه کم نظرتن تا اینجا چی میشه؟ مخبول مطلق میشه اما ببینیم کم یومن سنت اینجا چی میشه؟ اینجا زرخ میشه اینجا چی میشه؟ زرت میشه کم رجولم رئیت متفاوت است پس اگر کناه از حدثی باشه اعرابش مفعول مطلق هست این زیبایی ما شالله و کدوم؟ خب میگیم کم مفعول مطلق جولتن تمیز جولتا فعل با فائلش لحقی جار و مجرور متعلقه به جولتا کم اون خبادیه هست با. خب تا اینجا ای کار پس جلد دوم کتابتون تموم شد سب کنید درس رعدی رو بخونید